اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین الله صلی علی محمد و آل دو وقت و ظهرینه الا غروب اختیاراً الا اشهر القولین خب بحث ما در مورد انتهای وقت نماز حالا اول وقت نماز ها رو گفتیم نماز زخش گفتیم از لحظه زوال شروع میشه نماز عصر از بعد اون شروع میشه نماز مغرب از حمره مشتقیه نماز اشارا بعد اون و نماز صبح از طلوع فجر صادق شروع میشه حالا آخر وقتشون چی هست یعنی از اون به بدیه بد نماز قضا میشه این هم ببینیم یمتد دو وقت تو زهرین علال غروبه نماز زهر و اص تا غروبه سوال توی این مسئله اختلافی ممکنه باشه؟ آره دیگه هم بالا گفتیم یا هم رو... چند خط قبل گفتیم شیخ توسی تو خلاف گفته است که نماز زهر تا اول فضیلت اص تا مغصن وقتشه یعنی بعدش دیگه قضا میشه اختیارا یعنی اختیار آه. کنیم این نه نه نه اختیار کنیم نیست یعنی حالت استرار این حرف نه در حالت همه اختیار من دوست دارم نماز زهرم و بزنم تا یه چند دقیقه قبل از غروب روش کنیم ندونم مطابق که اون آخر وقت اگر به اندازه انجام نماز عصر تا غروب وقت مونده باشه، اون دیگه اختصاص به عصر داره. پس وقت اختصاصی نماز زور از اول اذان از هست به اندازه انجام نماز زور. وقت اختصاصی نماز عصر به اندازه انجام نماز عصر تا غروب مانده. اونجا جای خودشونه فقط نماز دیگه اونجا واقع بشه باطله. لذا شما نماز ظهر رو آخر وقتش رو میگی تا غروبه البته با این توضیح که به اندازه یه نماز عصر تا غروب باید جا باشه پس آخر وقت نماز ظهر در واقع یه چار پنگ قبل از غروبه نماز عصر آخر وقتش خود غروبه چطور بارد شهید اول این توضیح دیگه نیست اگه اگه بگیم مثلا تو وقت اختصاصیش؟ خب اون وقت چی میشه؟ قضا میشه؟ دو رکتش میفته بیرون یا چی میشه؟ آره اینا دیگه هم بحث آره اینا دیگه هم فرواتیه که تو این بحث وجود داره که مثلا اگر من نماز ظهر رو الان بخونم یه رکتش دو رکتش میفته تو اختصاصی اصر چکار کنم بخونم یا نه اون وقت اصر رو بخونم دو رکتش قضا میشه آخر. چه کنیم اینا؟ اینا دیگه فروارتشه اینا باید ببینید <تصفح> باز به شما من حضور زهن ندارم یا نگم که مشکل <تصفح> پس آقا اختیاراً هر وقت گفتن یعنی در مقابل استراره الان اشهر قولن یعنی معلومش اختلافه اشهرم چه گفت یعنی قول مقابل چی چیه مشهوره. الان اینجا اینه یعنی اون قولی که شیخ توسی تو خلاف گفت و هیچ وقت تا حالا نشیده بودید اون مشهوره؟ نه دیگه لذا همون حرف که من گفتمه اشهر خیلی وقتا به منیه مشهور حسابی یعنی مقابلش اصلا یه قول به دردخور و شاید نادره اینجا هم همینه الا اشهر القولینه البته مگر این که خوش کنید یه بگم مگر این که اشهر به این اصل وقت نخوره به این اختیارن بخوره یعنی ما یه قولی داریم که میگه این در اختیار نه در استرار تا غروبه این در اختیار تا اون موقع نیست الان پاورقی رو ببینید فازل اصفهانی در مناهج گفته و القول الاخر ادم الامتداد اختیارن بس اولین کدون قوله بالا که نه ازن قولا متشا ابون الا قول المفيد امتداد الا ان يتغير لون الشمس اختیارن و غروب سر نه پس اون حرف شیخ طوسی نیست که تا وقت فزیلت عصر این چیز دیگه است میگه تا اون موقعی که خورشید دیگه زرد میشه چون قبل از غروب یه مقدار که به غروب مونده خورشید یه مقدار خب رنگش از اون حالت پر نور متمایل میشه به زردی و اینا تا آخرش قرمز میشه دیگه درسته میگه تا اون اسفرار هست اختیارنش پس اینم یه قول دیگه ای شد در اینجا قول شیخ ال مبسوط و جمل و الخلاف بالامتداد ال مسلاین اینم همون مسلن که اون بالا گفتیم این همونیه و الا الغروب استرالن اینم قول دو قول سه علم الهدای به امتداد ایرا تا اسباه شاخص شش هفتم شاخص برسه تا اسباه شاخص و نصف شش هفتم و نصف شش هفتم و نیم شش و نیم هفتم در واقع آره پس آقا تو این مسئله از این پاورالی شوارده. آره شش و نیم هفتم سیزده چارده هم پس توی این مسئله سه تا قول شد. اشهرش اینی بود که ما گفتیم که تا غروبه قول غیر اشهرش سه تا قول بود. یکیش مال مفید، یکش مال شیخ طوسی، یکش مال سید مرتضا. که اینا هر کتون گفتم چه شکلی قائل به آخر وقته نماز ظهر و هستن. ولی باز ارزی که من عرض کردم اون درسته. یعنی اشهر در انجام یعنی مشهوره چون اقوال چیزی نیستن اینا خیلی قائل نداریم دیگه بله فرمایش تو بله عدام مرهدا سید, بله. سید است. بله. برادرش سید رزی نمیسنده نهجر بلاغه سید مرتزا فقیه بود سید رزی بیشتر وجه ادبیش بین ما مشهوره و نوشته نهجر بلاغه سید رزی عدیب بود یه یعنی اون آدم حسابی های تو ادبیات بود خودش هم عرب خیلی خالص بود مثلا مثل شیخ توسی یا نه نبود که ایرانی باشه به اونجا عرب اون را عربیات بگیر نه خودش عرب خالص بود یه ماموزاده است دیگه سید مرتزا از نسل امام کاظم علیه السلام بگذرم هست دیگه وچه عداری ولی سید مرتزا وچه فقی داره چه شاگرد شیخ مفید بود دیگه سید رضی و سید مرتزا همون دو نفر یعنی که سی... شیخ مفید میگه تو خواب دیدم که حضرت زهره سلام علیه دست امام حسن و امام حسن رو گرفته اومده پیش من به من فرمود که علم همش علم هم الفق شیخ به اینا فقیق یاد بده میگه بیدار شدم میده من آخه یعنی چی حضرت زهره امام حسن و امام حسن رو آورده گفته به اینا فقیق یاد بده این چیه تو موندم میگه یه دفعه دیدم که خانم جلیل و وارد شد دسته یه بچه اومد، یه بچه اومد، گرفت گفت شیخ علم حمل فرق، به اینا فرق یاد بده. دیدم ها این بوده. یکی شد سید یک یکی شد سید مرتزا، شاگردار شیخ مفید. شیخ توسی هم چه اومد؟ شیخ توسی جمونتر بود. لذا، اول شیخ مفید از دنیا میره، سید مرتزا میشه رئیس. بعد، بعد از یه مدد 436 سید مرتزا از دنیا میره، شیخ توسی میشه رئیس. شیخ توسی هم که رئیس میشه تا سال 450 همه چی خوبه البته خوبه که نسبی دیگه خوبه اما 450 آله بویه متاسفانه برشیده میشن یه اناسار خبیسی به اسم سلجوگیان میشن حاکم اونا دیگه شیعه میبین سالیشون نیست اونا هرچی بود از بین میبرن شیخ توصی مجبور میشه بغداد رو ترک میکنه و حالا به تعبیر من فرار میکنه دیگه جونشون نجات میده دیگه مجبور میشه. خودش رو این رو یه جوی جمع کنه حوزه علمی رو جمع کنه بره کجا بریم خدایا دید تو کنار قبل از و یه جا هست رفتن اونجا رفتن نجف و حوزه علمی قو... نجف از همونجا شروع شد سال 450 الان هم 1400 نزدیک 50 دیگه دقیقا هزار ساله که حوزه علمیه خم میگم هی حوزه علمی نجف <تص> اینجوری با این درش شروع شد یعنی سهل بانی شدن دیگه. حوضی نجف اونجا شروع شد هست. خب این هم هست سوال آقای محمدی اما لا به معنا انا زهرت تشار کل اسرفی جمعی ازاله کل وقت حالا باز اون نقطهی که ارز کردم اینجا تذکر دادنیه دیگه باید اینو بگیم آقا شما که شهید اول خدا رحمت کنه شما رو شما که فرمودی زهرین تا غروب ادامه داره یعنی هم ظهر و هم آخر وقتشون همین تا غروبه؟ نه دیگه. لا به من از ظهره تشار کل الوقت جمعی کل وقت. بلکه تو اون یه مقدار وقتی که آخرشه اون مال مخصوص عثره و یخ ص صرم آخرهی به مقدار ادایها ها، دقیقا مثل همون زهری که اول وقتش بود چ یخ ظهرمم اوله بهی. خاصیت این وقت اختصاصی هم همونی هستش که عرض کردیم که اگر اشتباهی در اون موقع بخونید اگر کلش بیفته نماز دیگر کلش بیفته تو وقت اختصاصی اون باطله اگر بخشش بیفته با این مبنا درسته حالا ممکن این نفر بیاد بگه نه ما اصلا به نظر من بخشش هم بیفته باطله اون چیپتو داره دیگه حالا بعضیا من یادم قبل از طلبگی یکی از رفقای ما یه بار نمازشو نخونده بود نماز عشاشو. بعد یه گفتم خب پاشو بخون دیگه. گفتم ها بندازم همون آخر وقت اختصاصی. فکر می‌کرد وقت اختصاصی همون وقت غزیلت اشتباه گرفته بود. وایسات وایسات وایسا کاری اون جون یه موتورچی حچی بود. بعد آخرش گفت ها الان وقتشه زود پاشو صریح خوند یه قضا نشه. این چه نیست اشتباه کرده بود. برد ها ما طلبه فهمیدیم اینو. ایم. حالا البته مردم عوام باید احکام یاد بگیرن این چیزها رو دیگه باید یاد بگیرن وقت نماز چجوریه وقت حتی قضا شدنش در باید بدونن لذا احکام مال طلبه ها نیست احکام عمومی همه باید بدونن طلبه دیگه به طریق اولا و اطلاق و امتداد وقت ما به اعتبار کونه ما لفظاً واحداً حالا شهید سانی دوباره یه بحث عبارتی در عبارت شهید اول داره. میگه که شهید اول باید میگفت وقت نماز عصر تا غروبه. وقت نماز زهر که تا غروب نیست که اون یه چند دقیقه جلوتر تموم میشه وقت ظهر درسته؟ پس چرا شهید اول اونجوری گفت کفت وقتو زهرن تا غروبه. اشکال روشنه دیگه درسته؟ جواب شاید اینه پس و اطلاق و امتداد دارستانی دارستان همیشه قلم دستت باشه اینجوری میذاری اینجوری من داره. فیلم نیست که من دگام فیلم بخواه یه تقمه بخیر اینجا بسرید خوفیلا تقمه قشن نگاه کن نه قلم به دست هم بنویسیم اونجا بنویسیم اینجا شوخی میکنم برشت <بصح> <تصح> یه <تصح> <تصح> <تصح> اینجا بنویز بنویز پاسخ به شبه مقدم پاسخ به شبه مقدر جواب اینه اطلاق و امتداد وقت ما این چه گفت امتداد وقت زهرن هر دوتا رو با هم گفت به اعتبار کونه ما لفظن واحدن این دوتا از یه لفظی یکی هم زهرن دیگه. یکی حساب کرده دیگه لفظشون ظهرنگ یکی حساب کرد یعنی چی دوتا یکی دو تا نمازه آه. ولی در لفظ یه لفظ برشون آورد ظهرنگ آورد دیگه آه. درسته از امتداد و وقت مجموعی حالا که این رو ظهرنگ گفت یه لفظ واحد برشون آورد من نگاه بذم توضیح بدم عبارات شهید رو،, رو میگه ببین ظهرن که آورد براشون یه لفظ واحد آورد دیگه ما ظهرن رو نگاه میکنیم درست اگه جدا کنی ظهرش چند دقیقه زودتر تمام میشه عصرش تا غروبه درست ولی دو باهم با بیاری بگی ظهرن مجموعه رو نگاه میکنیم حالا تو مجموعه نگاه کردن هم وقت این مجموعه تا چه تا غروبه دیگه بله یکی از فرداشو نگاه کنی جلوتر تمام میشه این مجموعه رو نگاه کنیم مجموعه رو مجموعه بگیم تا همون خود غروب ایشون هم مجموعی نگاه کرد چون لفظ واحد برشون رو مجموعه شده میگه که از امتداد و وقت مجموعهی بله منحیصوه و مجموعه الالغروبه دیگه درسته این منافاتی هم نداره لا ينافي عدم امتداد بعض اجزای بله درست است اگر بعض اجزاشو در بیاریم از مجموعه نگاه کنیم وقت ظهر تا خود غروب نیست ولی منافاتی نداره ما مجموعی نگاه کنیم و بگیم تا خود ظهر تا خود غروب و هو از ظهر اشاره به همون بعض اجزای إلى ذلك یعنی تا غروب این الى کم متعلق به امتداد امتداد مجموع منافات ندارد با عدم امتداد بحث اجزا كما از قيل يمتد وقت العصر الى الغروب همونطور چه گفته می شود امتداد دارد وقت العصر الا الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض اجزای ها شهید ثانی یه نکته میگه شاید طالع نشدید شهید ثانی میگه اگه بخواید اینجوری جیر بدید که بگید آقا ظهر زهرش ظهرش تا غروب نیست که اون وقت خود اینجوری دقیق بشید خود عصر رو هم نمیتونید بگید تا غروب میدونی چرا؟ چون اگر بگیم وقت اصر تا غروبه یعنی من میتونم تا غروب سب کنم بعد عصر رو شروع کنم درسته؟ یعنی مثلا یه رکعت مانده به غروب شروع کنم میشه؟ درسته؟ به اندازه یه رکعت مانده به غروب عصر رو شروع کنم درسته؟ نه پس خود وقت نماز اصر هم تا اون که به اندازه اصر بتونی بخونی؟ تا خود غروب نیست که وقت از شروع کردن است یه چند دقیقه قبل از غروب شروع میشه باید تا اون موقع شروع کنیم پس همونطور که اینجا تو خود اصر ما وقتمون تا خود غروب نیست مجموعه زهرینم وقتی میگن اینم همونطور به اعتبار بعضل اجزا مثلا شما الان تو همین کلمه اصر که میگیم بعضل اجزا یعنی رکت اول رو نمیتونی نگرداری تا همون لبه های غروب تا نزدیکه غر. باید خود زودتر شروع کنیم. چرا؟ ولی رکعت چهارم میتونید تا همین دم غروب جوری رکعت چهارم تمام کنی. السلام علیکم رکعت چهارم چه خود غروبه. ولی رکعت اولش نمیتونید جوری بخونیم. چون وقت رکعت دومش میفته بیرون. سوم میشه، غذا چهارم میشه. غذا. پس همونطور که در مورد کل نماز عصر بعضی اجزاش رکعت اول دومش تا دم غروب جا نداره. زودتر باید شروع بشه. اینجا هم همینطور زهران زهرش تا لحظه غروب نیست. زودتر باید شروع بشه. به هر هم تا هم که تا هم شدن دیگه. هر اینجا بزنی پر اونجا هم همین رو بگو. تو زهران هم بگو. بگو اورخان همینو دیگه. اینجوری بشه که زهرا اس رو با هم بشه خون پس اول زهرا بعد عصر از جا داره میگه یعنی می بگم شما به هر حال در راستای شهید سانی داری حرف میزنی دیگه هر حرفی اونجا بزنید اینجا هم باید همونو بزنید اشکال با شهید سانی نیست فقط مدل جواب رو شما عوض میکنی یه جور یه دیگه میگی جواب بدیم فکر می‌کنم اینجوری باشه حرف شما خیلی خب ولی دوباره یه سوال از شما بپرسم. شهید اول اومد گفت آقا زهره است وقتشون تا غروبه الان این برای شما یه ایرادی اشکالی یه استرابی بلبلهی آشوبی ایجاد شد اذیت شدید که این اشکال و جواب رو داشته باشیم توضیح بدیم آقا منظورش این و اینا یا نه آدم می فهمه دیگه این آروم معلومه دیگه زمینو که جای دیگه هم توضیح دادن اینو گفت اندازه ای تا غروب مونده باشه که بتونید اول ظهر رو بخوید بعد عصر رو اون وقت عصر وقت خاص خودش اینا نیاز به این بحث‌های عباراتی نداره من حالا این دو سه تا بحث عبارتی که تو این چند روز اخیر داشتیم خیلی با اینا من موافق نیستم یه چیزی که نمیگفت خودمون راحت تر بودیم مشکلی هم پیش نمی اومد گفتید شاید الان دیگه ما همه دقت کنیم جیر بدیم ببینیم اه. این جواب شیطانی حل نکرد پس چه کنیم اونها یه دفعه مشکل اصلا حل نشه خب چرا اینو میگید اصلا نه اینو نه خیلی وقتا به علم عرفم نکته رو تذکر نمیدید میبینی خودش راحت مثلا الان شما همتون میاد اینجا و میرید بیرون اگه من بگم که اون موچتی که اون دم در هست مواظب باشید پاتون رو اون مثلا نذارید یا مثلا میبینی همه حساس شدن حساس یکی وسواس میشه یکی دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه پاشون میذارن رو شوینام باشگل پیش میاد. تا حالا خودشون نمیکردن این کار رو باشگلیم پیش نمیم مثلا میخواید از خونه برید بیرون بچه هیچ وقت با گاز بازی نمی موقع بیرون رفتن بچه ها با گاز بازی نکنید او بدتر شد یه دفعه بچه می گاز ها بیریم میبینیم چیه یه دفعه با گاز و پای نه اصلا بزر خلاص دیگه به راحت بریم جلو حالا اینجا میگه این اینجاش دیر داشت ولی جواب داریم جوابش اینه چطور باید خودیه‌ها صوره تقریبا دیگه جواب یکیشامو تقریبا چه ظهرنگ آخه پاشو تقریبا باشه تقریبا چی تقریبا ظهر و عصر خب زور اونچه شو بعدام چه زور که اصلا تا غروب باز اینجا دوتاش با هم مجموع حساب کردیم میگیم اصرش تا غروبه ظهرش تا غروب تقریبا بلاغت حالا دیگه؟ آسمان و آره دیگه؟ یعنی ما زهر و عصر ولی لفظ واحد به کار برده زهر این گفته، نگفته. خب باش. ولی باز مشکل حل نمیشه بده چون دوتاش زمانشون دقیقاً یه نیست خیلی خب پس ردشیم دیگه وحی نزن فا اطلاق... مطلب روشنه حالا اون هواشیش دیگه خودتون باز ببین فا اطلاق الامتداد الان وقت هما بر هر دوتاش گفت امتداد دارد تا قروب این بهازل منا چیه؟ چی به طریق الحقیقه این چه شعید سالی میگه این چه من گفتم به طریق الحقیقه حل کرد مطلب رو نیازی نیست بگیم اینجا مجازنه نه حقیقت شد چرا حقیقت شد؟ چون من زهرین را حقیقت در هر دوتاش گرفتم ولی گفتم به اعتبار مجموع پس آقا اگر جای پرسیدن تو امتحان این آمد اینجوری بگید بگید که شهید رسانی میگه زهرن چون مجموعه و ما برای مجموعه علا طریق الحقه میتونیم بگیم تا غروب چون به اعتبار بعضشه اما یه وقت میگید نه این مجازه استعمال مجازیست و اینا شهید رسانی میگه نه اون چرا بگید همین با حقیقت بودنش نشه به طریق الحقه مجازه اطلاقا حکم بعض الاجزای الان جمعی این اطلاقا روش بینمسید همون اطلاق مجازیه یعنی اطلاق مجازیش چی بود مگه اینو حکم بعض رو به جمعی میدیم اینو چی میگفتن مناسبتش رو من می حکم بعض باز... نه تقدیم مناسبتش دیگه استعماله بعض در جز در کن دیگه جز در کن استعمال حکم جز در پر. یعنی جزش تا قروبه اصر تا قروبه. نه کل زهرنگ پس استعمال میشه مجازی شاید ادسانی به من این رو نمیگم من میگم مجموع بله تا قروبه حقیقتا هم تا قروبه او نهوزالکه نهو بخونیم دیگه مد... مرفوها یه حکم اونه اطلاقان لهجم به بعض اعضا او نحو وزا این نحو رو به کجا عطف کنیم من بیشتر میخوره چه به خود اطلاقا بزنیم یعنی نحو زابتون یعنی یا به خاطر اطلاق هجم بر بعض هجم اح... به بعض اعضا بر جمع یا به خاطر چیزای دیگه لذا منصوب بخونیم اینو بهتر فکر میکنم نه نحو زالج عطف بر خود اطلاقا بشه شما جوری دیگه مجازشو درست کنید میگه اونا هیچ کدوم نیست همون چه من گفتم الان طریقه حقیقت خب این حقیقتش روشن شد براتون من دقدقه دارم روشن شد یا یه بار دیگه بگم برای امتحان مجازش. روشن نشد یه بار دیگه میگم مجازش روشن. مجازش روشن حقیقتش اینه شهید سانی میگه اگر ما برای افراد متعدد یه اسم مجموع بذاریم مجموع این استعمال حقیقیه و اون حکمی هم که داده میشه الان نحول حقیقت درسته مجاز نیست لذا زهراین اگه میگید بر این مجموعه بله زهراین حقیقتا تا غروبه اما تو این استعمال مجازی میگفت نه ما اصلا حکم مال بعضشه نه مال این و اون یه چیا لذا مجازم میشد خب حالا باز فکر کنید دیگه ممکن حرف شهید سانی اصلا خودش ایراد داشته باشه روش فکر خوب و وقت ال عشاء عین الا ولی من اصل این جور بحث ها رو برای خود شهید ثانی ایراد دارم یعنی اگر شهید سانی رو یه بار ببینم ایشون بهشون میگم چه اینا رو نفهمیدم چه خب خوب نیاش اگر قانع کرد ما رو میپذیریم قانع نکرد ما تو کتابای خودمون اینا رو نمیاریم ولی برای شما تو مطالعه و مباحثه و جزوه نویسی همه‌شو باید فرق نزادید همه شو یکاسه باید خوب بخونید و وقت طول اشها این تا چهه الا نصف لیله تا نیم شب نماز مغرب و اشها آخر وقتش نیمه شبه خب حتما شهیدسان این جام همون رو داره دیگه درسته؟ چون مغرب چه تا نیم شب نیست اشها تا اون موقع است. مغرب تا اندازه یه نماز اشها مانده است اطمام میگاره این جام همون بست هسته اختصاص الاشای من آخرهی به مقدار عدایه ها یعنی وقت اختصاصی اشا اون مقدار ادای نماز اشا از آخرش هست مم. حالا پنج دقیقه چهار دقیقه ها چقدر شد الان نفه ما زکر نافه زهرن همون چیزی که اونجا گفتیم اینجا هم هست پس چرا این اینجوری شده و اینا به خاطر آمه مجموعی بودنش هست حقیقت هم هست مجاز نیست تو این در اینجا میاد بله نصف شب رو اگه میخواید حساب کنید از اول غروب تا اذان صبح از اول غروب تا اذان صبح رو شب حساب کنید نصف ببینید چی میشه از اول غروب تا اذان بله مطمئن نشو ندارم نه نیمه شب اینجور است که مثلا تو آسمون یه چیزی حالتی چیزی بشه طبیعی انگار چیزی نیست ولی از اول قروب تا از آن صبح رو حساب کن ببین چند ساعت میشه نصفش حساب کن البته بعضی ها میگن از اول قروب شب رو حساب کنی تا طلوع آفتاب این باعث اختلاف میشه که وزن مراجعه هم داره ولی به نظرم از اول قروب حساب کنی تا از آن صبح وسطش همون یازده ساعت و روبه اینا بعد از اذان زهر میشه. یعنی اگر ازان زهر ساعت دوازده هست. ظهر ساعت دوازده اگر اذان هست. یازده و روبه میشه نسبه شم. با این مبنا. دیگه اون قصده داره. میگم چون ما فکر ما روایی نیست. اگر روایی بود خشن همه چی خود به خود حل میشد برای تو. ولی چون روایی نیست دیگه رو باید مراجعه کنید. و سالشیر همین باپا رو حالا همین اوقات صلات و اینا انقدر روایت خوب داریم حالا فردا پنجشنبه از دست رفت دیگه ببینیم این روایت خیلی خوبی داره مفصل هم هست اوقات صلات خیلی مفصله میتونستید ببینید اینا رو حالا بعدا ان برنامه داشته باشید ببینید و یمتر دو وقت و صبح صبح چیه صبح دیگه خیلی روشنه دیگه حتی تا طلوع شمس وقت صبح ادامه پیدا میکنه تا طلوع شمس الان خب این یه نکته جالب داره. اون هم اینه که طولوه شمس باید بر افق حساب کنید. افق واقعی اون مکان. حالا چه شما ببینید اونجا چه نبینیم. لذا اگر یه کوهی تقریق جلوه افق رو گرفته شما اگه وایسی آفتاب از این کوه بیاد بالا میشه ساعت 11. اون حساب نیست. افق واقعیش حساب کن همون موقع. لذا میگن از آن زور به افق تهران. از آن صبح به تهران. افق حساب میکنه افق یعنی چی افق یعنی هم افق همون زمین, زمین دیه آره الان ما گفتیم آسمون همون زمین دیه یعنی خورشید از اون افق بیاد بالا آره. از توی آره. زمین زمین بیاد بالا از توی آمد. زمین چه نیست اون برزن. پشت زمین آره دیگه تا خورشید سرش اومد بالا اون میشه دیگه قضا قضا شده دیگه این محاسبات ای داره که چجوری هست و شما نمی‌بینید که معمولا کوه نمیذاره جلوش دیده بشه خود چرا شما الان کنار دریا اگه باشید نه الان شما برو کنار دریا آه. یا برو یه جای بلندی وایسا همین تو قم هم باز جا پیدا میشه از اون طرف که خورشید میاد بالا آدم میبینید. ولی کنار دریا خیلی دیگه راحت. دریا مخصوصا دریا آزاد اگر اونجا باشید قرشم مشخص آفتاب الان بالا. اون دیگه دقیقه دقیقه. خب و وقت تو نافلت زهره من از زوال الانیست. خوندم اونجا رو. افق مکان مسلی و یه لم تزهر لیل اگر تا اگر شما نبینید مثل پشت کوه و این اون دیگه ابلند افق اف چرا وقت فضیلت صبره؟ هنوز یت رو نگفتیم الان میگیم. وقت فضیلت صبح رو ها اون یه تیرو گفت صبح رو نگفت. صبره چون تو سه قلم اون فضیلت ممکنه آره من تو سه قلم نیستم. آره. چرا ممکنه اونجا بگیم که مثلاً تا وقتی که ستاره ها ناپدید بشند و اینها یه همچین تعبیری هست آخه وقت نماز صبح توی یه روایت هست که حضرت لند لعن میکنن اونا که نماز صبح رو تاخیر تا ستاره ها ناپدید بشن این توابیر هست متوجهش آره خیلی آقای بهجت رو میگفتن میگفتن ایشون همه نماز صبحشون اینجوری دیر میخونن یعنی معلومه شما روایت یه نکته ای داره یا درست است این خیلی با وقت فضیلت بعضی ها شمس همون اول وقت شروع میشه تا اون که گفتیم دیگه ولی مثلا نماز اصر گفتیم نه دیگه نماز اصر گفتیم تخیر بندازم و وقت و نافلت زور حالا برسیم به وقت نافله ها من از زوال الان یسیر الفیعو و هو از زلون حادث و بعد از زوال آقا سایهی که بعد از زوال حادث میشه اسمش فیعه اتفاقا فعی بگیم بهتره تو اون صفحه قبل زل گفت شهیدستان اینجا تذکر میده میگه این بهتره فعی بهتره چرا؟ چون فعی رو ما یه جایی هم خوندیم تو بحث تخلی بود فکر می‌کنم. درسته؟ فعی تو بحث تخلی بود مجروحات تخلی چه کجاها تخلی نشه؟ گفتیم مردم رجوع میکنن به اونجاها آره ا یه جای من یادم آره یهام چیزی داشتیم مردم رجوع میکنن آه گفتیم مس فی به معنی رجوعه حالا اینجا شهید سانی میگه این سایه بعد از ها سایه فای آن نزد آره به معنی برگشتن رجوع کردن حالا آشهید سانی میگه این تعبیر سایه بعد از زوال رو فای بگیم بهتر از زله لوحانه تو چرا چرا چرا فای بگیم همون زل سایه بگو سایه برگشته نه خورشید من روجو دیگه سایه برگشته سایه برگشته چون خورشید از مغرب رفت به وسطی رسید رفت و اونور سایه برمیگرده اینو از مشرق میاد به مغرب پس فای شد در واقع حالا ببینید میگه وقت نافله ظهر اولاً نافله ظهر چند رکعت بود و کجاش بود هشت رکعت قبل از نماز ظهر بود میگه وقت نافلی ظهر من از زوال از زوال شروع میشه الان یسیر الفیع تا اون موقعی که این سایه بعد از زوال و هوا زلال حادث و بعد از زوال. سم ماهو بعد این داخل دوتا خط کذاشته کار خوبی کرده جمله معترض است سم ماهو فی وقت الفریزت زلن اونجا این سایه رو زل گفت و هوا فیعن و هو عجبت این بهتره اینجا فیع گفت لَنَّهُمْ مَأْخُوزَنْ مَنْ فَاعَ ازا رَجَهُ فَاعَ بمنی رجَهُ هست که اینجا برگشته دیگه افتاد برگشته اون ور سایش افتاده این ون. مقدار قدم اینه وقتی سایه به مقدار دو قدم شد نافله زور تا اون موقع است قدمن یعنی چی؟ اشتباه نکنید در اینکه دو قدم را بریان ای سبعی قامتل المقیاز قدمن یعنی دو هفتم ارتفاع مقیاس بشه پس اگر شاخص شما 20 سانت بود دو هفتمش چه میشه؟ مثلا بیست یک سانت بگیرید سه تا بیست یک تا دو هفتم چه میشه؟ میشه؟ دو سه تا 6 تا شیش دیگه شیش میشه 6 سانت میشه از 21 سانت به 6 سانت که رسید سایه. تا اون موقع وقت نافل هست دیگه بعد، بعدش نافله تمام میشه قضا میشه ای صبح ای قامت المقیاس بذارید این رو بگم چرا قدم این رو به... یعنی هر قدم میشه یک هفتم دیگه در واقع هر قدم میشه یک هفتم علتش اینه چون قدیما اینجوری حساب میکنن میگفتن قامت هر انسانی هفت قدم خودشه هفتا پاشو اینجوری بذاره کنار هم هفتا حالا خودتون برید حساب کنید دیگه یه نفر اینجا بخوابه ببینید پای اون هم اندازه اون هفت قدم میشه یا نه لذا یک انسان رو هفت هفتم هم میدونستن حالا اینجا هم این مقیاس رو میگه هفت هفتمش دو هفتمش اگر شد آخر وقت نافلی ظهر این دو خط بخونم بعد بریم سوالت باشه برای بعد چیز مقدار قدمن این ای صبح ای قامتل مقیاس لأنها اذا قسمت سبعه اقسام و لكل قسم قدمان اگر مقیاس رو به هفت قسم تقسیم کنیم یعنی هفت بخش هر بخشش یک قدم میشه پس دو قدم میشه دو هفتم یک قدم میشه یک هفتم والاصلیه ان قامه الانسان غالبا سبعت و اقدام به قدم خودش هفت قدم هفت قدم باز نه هفت قدم بسته بس است این هم وقت نافله ظهر تا فردا ان بینیم از ببینیم چجوریه شنبه دیگه ان شاء الله الله سلام